Jag vill ha ett litet i krigsjärn i Koran-Kerim och i krigsjärn i Iran-Kadr-Kadr-Muttall. Om du vill ha ett litet i krigsjärn, så kan du Känner du att i och med, att du är så mamma här, du är rock and roll, du är så jäste, du är lättad att ha homer, jag är så nöjd, du är så dålig som du är. Ballar du med av din teleterim, du är Would you like to meet President Obama? The White House has said that if Iran is serious about engagement, frågan kommer att få nyheter. Nej, det är Det är det är det är nyheter. är nyheter. Bara för att det är nyheter. Bara för att det det det det det det det det det det det خواص عملی دولت امریکاست بعنوان بهترین فرد برای تصدی این مسئولیت از فعالان دفاع مقدس شخصیت های دانشگاهی کشورمون هستند دارای سوابق مفید اجرایی و قانونگذاری اگر به بهشون پدر پتروشیمی میگن به درستی میگن فهم سیاست خارجی دانش و تخصص مورد نیاز و از افتخارات علمی کشور همجنس با ایشون آشنا هم کشور با ایشون آشناست ایشون جد و بود که من با اصرار از ایشون دعوت کردم که بیان برای این مسئولیت من به حق نگران دریاچی بودیگه هستم وقتی مهمترین رکن ساختاری نظام اعلام میکنه که نقد آزاد هست چطور دیگران این همه تنگ نظری نسبت به نقد و انتقاد هر چیزی رو فوری نباید سیاسی بکنید Det är 210 000 miljarder i följden i följda 130 000 miljarder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 Kiva aet du lahom mastataatom min huva. Oroze solet, tassilie, zoru sissa du navadu, i rånsami, machamanda, vichamanda, demi. Jeksohan roni, dar machma, umumies, oazmone mellal, jeksohan roni, dar egylos, xalesela, pa bara för sol och inte för krig. Hållningen, hårda baser för bevarande, hårda utbildningar och frågor från alla hårda händelser. Försöker jag inte att ta upp världen för att ما معتقدیم می Would... مذاکرات سری är باید Four آغاز بشه و به the, current... the provisional agenda is adopted as proposed bara för att hindra tårdelar och rar handlingar från länder som är i vårt världskonventionssamhälle. Länder som är i vårt världskonventionssamhälle. Länder som är i läzta äkter, var hal telefonet safir, zänkord och skaffa safir, boda, ova, va, va, ham, samtal, man, deri telefon, var hoga hästie, mardom telefon, man, teras, ما در مرداد وقتی دولت تحویل گرفتیم تورم 39 درصد بوده تورم سالانه تمام تلاش دولت مهار رشد تورم و مهار رشد منفی است یادمون باشد ما قیم مردم نیستیم یادمون باشد همه ما باید خادمان این ملت بزرگ باشیم Boksh kishavarzi ma srmaiee mi-khaahd Tخصos mi-khaahd Dör dänشgah Yek zbän rö Ma bieştär nemi Och on Zbän ilm شهیدان و خانواده‌های شهدا و بدیژه شهدای هسته‌ای با نصار خون خودشان باعث شدند تا این فناوری به کمال خود برسد. فردا صدومین روز شروع کار دولت امروز روز 99 است. هر کس هر تفسیری می‌خواهد بکند در متن این توافق به سراحت آمده که ایران قنیسازی خودش را انجام خواهد داد هم نتنز، هم فردو، هم عراق، هم اصفهان و هم بندر عباس همه اونها به فعالیت خودشون ادامه خواهند داد این که در این توافق اعلام شده است که همه تحریم ها قدم به قدم با ادامه مذاکرات برداشته خواهد شد بر اون تصریح شده ما به این کشور افتخار می‌کنیم. ما به ایرانی بودن افتخار میکنیم بارلاها یاریم کن تا بنده مخلصی برای تو و خادم لایقی برای مردم باشم و فراموش نکنم اون چه بر پیشینیان رفته است سخن بسیار است و مجالندک چه بهتر که سخن را کتاه کنیم و پای در رحمیم که دراز است ره مقصد و من نو سفرم بسم الله الرحمن الرحیم مردم ایران سلام شب شما بخیر 101 روز پیش دولت 11اهم جمهوری اسلامی ایران به ریاست حجت الاسلام دکتر روحانی کار خودش رو شروع کرد آقای دکتر روحانی وعده کردند با من و شما که پس از گذشت 100 روز گزارشی از اون چه در این مدت رو انجام دادند به تلای من و شما برسونند امشب بنده به همراه سرکار خانم سپانلو و هم آقای دکتر احمدی افزادی اومدیم به دفتر کار آقای دکتر روحانی شب بخیر تبریک میگم صد روز گذشت شب شما بخیر خسته نواشید بسم الله الرحمن الرحیم با سلام و درود بر سالار شهیدان حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و یاران باوفایش و با تکریم بر همه بسیجیان دلاور که این هفته به یاد و به نام آنهاست به همه مردم ایران مردم خوب، باوفا، دلاور و مهربان ملت بزرگ ایران سلام ارزم می‌کنم. به همه اونها شب بخیر میگم و امیدوارم ساعات و ایام خوبی را سپری کنند همونطور که اشاره کردید من در ایام تبلیغات انتخاباتی به مردم بزرگ وعده داده بودم که علاوه بر برنامه 4 ساله دولت تدبیر و امید برنامه کوتاهی هم برای 100 روزه داشته باشم و در پایان 100 روز کار دولت رو و عملکرد دولت رو در طول اون 100 روز به ملت عزیز گزارش بدم. آیرسون موسخه این 100 100 روز رو چرا انتخاب کردین؟ مثلا عدد خوب خوب میتوز زندگیتون بوده؟ فقط نشان کسرت مثلا بود انتخاب کردین چرا صد میتونست 200 باشه یا صد و ده, ده باشه یا نوان داستان داستان انتخابات هست و بالاخره ایده های زودگذر مطرح میشه بعد آدم بالاخره با میمونه و ادامه میگه به هر حال صد یک است دیگه میدونید که تو نمره دادن هم بعضی از نمرها به جایبی صد هست نمره بالا و صد روز در ادبیات ما در شعرهای ما هم ازش گفته شده یه دوره زمانی هست که نه خیلی کتاهه که نشه گزارش داد و نشه برنامه ای رو تحییه کرد و ایجا کرد نه اونقدر طولانیه که به هر حال گزارش بسیار متول بشه مبنای این بود که یک برنامه کوتاه مدت سه ماهه سه ماه و ده روز که همون میشه صد روز مورد نظر دولت باشه و دولت به مردم گزارش بده البته این گزارش باید بگیم سه بخش داره یک بخش همینی که امشب رئیس جمهور منتخب به مردم به مردم عزیز گزارش میده یک بخش گزارش مکتوب هست که این گزارش مکتوب در رسانه‌های مکتوب منعکس خواهد شد در سایت‌ها منعکس خواهد شد و یک بخش هم گزارشی است که توسط وزرا و سایر بخش مسئولین بخش. و معاونین در بخش‌های خودشون به اطلاع مردم خواهد رسید بلافاصله یعنی در روزها و شب‌های بعد آیین دور بلافاصله از فردا اونها هم به تدریج آه. حالا ممکنه با صداوسیما مصاحبه کنن با روزنامه‌ها یا روزنامه خبرگزاری‌ها یا به خبر خبر صورت مکتوب ارائه بکنن قبل از این که به گزارش برسیم تصور الان در روز 101 هم با روزی که شروع کردید چقدر متفاوته آقای دکتر دکتر؟ شما روزهای ریاست جمهوریتون رسول میشموریم؟ یا نه واقعا؟ به اون صورتی که شما الان دارید میگید نه به ارحال هر روزش برای من بسیار مهمه دولت همه تلاشش اینه که حد اکثر استفاده رو از این دوره چهار ساله برای خدمت به مردم استفاده بکنه شاید برای اولین بار در جمهوری اسلامی ایران من در روز تحلیف دولت رو به مجلس معرفی کردم و برای رعی اعتماد اسامی رو در اختیار دو مجلس شورای اسلامی گذاشتم این به اون معناست که دولت تلاش میکنه که هیچ از فرصتی که در اختیار داره این فرصت رو از دست نده و حد اکثر استفاده رو از فرصت داشته باشه حالا گرچه همینطور که این دولت اولین دولتی است که اسامی رو به مجلس داده آخرین وزیری هم که ما رای اعتماد گرفتیم <تصفح> هفته پیش بوده به هر حال یعنی هفته قبل در آستانه, آستانه, قبل روز. در آستانه صد روزگی در واقع دولت کامل شده در این حال من میخوام از مجلس شورای اسلامی از نمایندگان محترم از همه مردم سپاسگزاری و تشکر بکنم البته این گزارش دولت مخصوص برنامه صد روزه نیست از این به بعد در هر مقطعی به طور منظم دولت به مردم گزارش کار خواهد داد دولت باید در برابر مردم پاسخگو باشه و افتخارش پاسخگویی در برابر مردمه مردم باید از جزئیات برنامه با خبر باشند، مطلع باشن چون که این دولت بدون همراهی مردم و همکاری مردم نخواهد تونست مسئولیت سنگین اداره کشور رو به مقصد برسانه. بهزاف اینکه دولت با این گزارش دهی میخواد مردم و دولت از لحاظ اطلاعات خیلی نزدیک یک دیگر باشن اطلاعات در اختیار مردم قرار بگیره اطلاعات مزیدون گزارش روند اجرای امور روند هست؟ روند کار اطلاعات حتی مشکلات دولت ممکنه مشکلات فراوانی داشته باشه حتما این مشکلات رو با مردم در میان خواهد گذاشت دولت ممکنه پیشرفت داشته باشه حتما این پیشرفت رو به مردم خواهد گفت دولت ممکنه برنامه بلند مدت داشته باشه حتما به اطلاع مردم خواهد رساند حتما مردم به ویژه صاحب نظران اندیشمندان اهل اندیشه و قلم میتونن به دولت کمک کنن با نقدشون با نصیحتشون با پیشنهاداتشون به دولت کمک کنن دولت تعلق به مردم داره و دولت افتخار میکنه که بتونه خدمتگزار این مردم خوب و عزیز باشه انشالله سلامت باشه امیدوارم امشب و هم شبهای بعد و روزهای بعد که فهمدید همکارتون گزارش میدن جور این صد روزه یه نسبتاً سکوت شما و همکاراتون کشیده باشه در واقع جبران مافات بشه چون این صد روز نزدیک به سکوت در واقع یعنی کمتر شما و همکارتون صحبت کردیم که به نظرم یه تراهی بود یعنی کاملا میشد حس کرد که یه تراهیه که حالا اگر دوست داشتیم یه وقتی صحبت بکنیم به این تقسیم ببقی... کار مثلا متفاوت نسبت به گذشتیم آره این که به جای این که شلوک بکنیم که چه و چه و چه به نظرم هم مثلا ارزیابی امور هم سباکسنگ گردن هم اقتضای شرایط به نظر میادم حالا من چرا پیش داوری می کنیم مایلین الان راجع بهش صحبت کنیم به اقتصادی بشیم فکر کنم یک کمی عجیبه مسائل حل بشه بیشتر به خصوص تسلطتون حوزه اقتصاده بله یه کمی عجله دارم من آقای دکتر روحانی که وارد مسائل اقتصادی بشیم همونجوری که فرمودی مشکلات زیادی پیش روی دولت بوده که بخش عمده در حوزه اقتصاده تصور می که یه بخش عمده از انتظارات مردم هم از این گزارشه صد روزه عملکرد اقتصادی دولته از این مشکلاتی که فرمودین فوری ترینش چون در صد روز گفته میشه که نمیشه خیلی زیاد کار کرد نمیشه برنامه های بلند و دست را اجرا کرد باید اقدامات فوری صورت داد فوری ترین اقدامی که مجبور بوده دولت شما از آغاز به کار خودش اتخاذ بکنه و تصمیمی که بگیره در چه زمینی بوده البته در گزارش امشب زمن اینکه که گزارش عمل کرده صد روزه به مردم خواهد داد خواهد شد به همون صورت هم به مردم خواهد خواهیم گفت یا خواهم گفت که در چه شرایطی ما کار رو آغاز کردیم و شروع کردیم در واقع از دولت گذشته چه ارسی به ما رسید و ما با اون عرص کار رو شروع کردیم و آغاز کردیم اولین روزهای بعد از انتخابات من با اولین مشکلی که مواجه شدم شرایط کالاهای اساسی در کشور بود. در همون روزهای اولیه چون اولین گزارشی که من از وزارت صنعت، تجارت و معدن گرفتم این بود که وضع کالاهای اساسی در کشور چگونه است. و گزارشی که به من داده شد من بسیار نگران کرد یعنی ما در کالاهای اساسی برخلاف اون چه که من در ذهنم بود من فکر می کردم دولتی که روکار میاد به طور طبیعی تا سه چهار ماه به هر حال انبارها پره شش حالا شش ماه لاقل سه ماه به هر حال کالاهای اساسی وجود داره من یک گزارشی به دست من رسید در همون روز سبوم چهارمی که برحال بعد از انتخابات بود همون هفته اول البته هنوز تحلیف و تنفیز و اینها انجام نگرفته بود در اون ایام یعنی در همین اواخر خورداد اوائل تیر گزارشی که به دست من رسید این بود که کشور از لحاظ کالای اساسی و از جمعه گندم دچار مشکل هست یک گزارشی به دست من رسید که در یکی از استانها گندم فقط برای سه روز در سیلو وجود داره و بلا فاصله من برخی از مسئولین اجرایی رو در همون دولت خواستم با اونها نشستم صحبت کردم مشکلاتی که برای تأمین ارز بود مشکلاتی که برای خرید بود مشکلاتی که برخی از این کالاها تو راه بود برخی از این کالاها رسیده بود تو بندر بود و ما داشتیم دمراج می به خاطر مشکلاتی که بین بانک مرکزی و بخش تجارت ما وجود داشت این اولین مشکلی بود که من باش روبرو شدم و مواجه شدم خوشبختانه اقدامات بسیار خوبی انجام گرفت از وقتی که دولت کارش رو شروع کرد تقریبا ما یک زخیره قابل توجهی فراهم شده بود و بعد از شروع دولت ما تقریبا اولین اقدام فوری ما این بود که این ذخایر رو به اون رقم قابل قبول برسانیم و این کار رو شروع کردیم و انجام دادیم امروز الحمدلله در همه کالاهای اساسی انبار‌های ما به اندازه کافی پر هست مشکل نداریم برای آینده دور هم خرید انجام گرفته کالاها به دست مردم خواهد رسید این اولین مسئله‌ای بود که من باش مواجه شدم و الحمدلله این کار انجام گرفت با برخی از مسعودین دولت سابق بعد هم در دولت جدید کارها با حمدلله تکمیل شد. خوب تمام شدیم بخش آقای دکتر روحانی حالا این قسمتی که شما گفتید اولین دوریترین فوری ترینی که شما سوال کردید موضوع کالاهای اساسی بود. البته مسئله دومی که بعد از شروع به کار دولت یعنی در مرداد ماه ما باش مواجه شدیم در واقع اون تعبیری است که من یک بار در یک سخنرانی اشاره کردم به عنوان خزانه خالی میدونید که خزانه کشور اونجایی است که درآمدهای دولت به اونجا منتقل میشه حسابهای دولت اونجاست مخارج هم از همون خزانه تأمین میشه طبق قانون بودجه ما می بایست ماهانه 17500 میلیارد تومان درآمد می داشتیم. چون طبق قانون بودجه درآمد و مخارج ما و به همان نسبت مخارج ما 210000 میلیارد تومان در طول سال بوده که برای یک ماه 17500 میلیارد تومان میبایست ما تا پایان مرداد میبایست در خزانه می داشتیم روزی که من شروع کردم یعنی دوازده مرداد موجودی خزانه حدود 1280 میلیارد تومان بود 1280 میلیارد تومان میلیارد تومان بود آخر ماه که دیگه ما می‌بایست حقوق رو پرداخت می‌کردیم موارد ضروری در بخش حقوق ما می‌بایست 7500 میلیارد تومان پرداخت می‌کردیم نه بحث بودجه عمرانی هم بودجه جاری حقوق کارمندان از این 7500 میلیارد تومانی که ما می‌بایست به عنوان حقوق پرداخت می‌کردیم فقط 2870 میلیارد تومان بیشتر در خزانه نبود یعنی بیش از 4060 میلیارد تومان ما بیایست از بانک استقراض می‌کردیم برای اینکه بتونیم حقوق ماه رو پرداخت کنیم بنابراین در همون ماه مرداد دولت برای پرداخت حقوق 4600 تقریباً میلیارد تومان بدهکار بود و می‌بایست تأمین می‌کرد و کل موجودی حدود 2800 میلیارد تومان بیشتر موجودی ما نبود. بنابراین ما با یک مشکلی به نام عدم تأمین درآمدها. شما می‌دونید در پنج ماه اول اون مقداری که در بودجه بوجه پیشبینی شده بود فقط 47 درصد تأمین شده 47 درصد منابع تأمین شده در طول پنج ماه البته اگر بودجه مصوب رو ما حساب بکنیم الانم ما حدود 5-6-7 درصد منابع رو میتونیم تأمین بکنیم یه خورده وز بهتر از اون زمانه ولی زا ما ناچار شدیم که بودجه رو اصلاح کنیم فا آمار و ارقام بودجه رو واقعی کنیم. بلازا ما با دو فوریت بلافاصله اصلاحیه بودجه رو به مجلس دادیم. البته هنوز از مجلس برنگشته تو همه امروز هم در مجلس اصلاحات شورای نگهبان راجع به همین اصلاحیه بودجه مطرح بود. به هر حال بودجه 210 هزار میلیارد تومانی تبدیل شد به 171 هزار میلیارد تومان. یعنی خود مجلس حدود چهل هزار میلیارد تومان کسر کرد به دلیل اینکه ارقام بودجه ارقام واقعی نبود قابل تضمین نبود قابل تضمین نبود البته همین رقم هم پیشنهاد دولت 150 هزار میلیارد بوده برای اصلاح 20 هزار میلیارد در مجلس اضافه شد حالا هر مقداری که تضمین بشه به هر حال شرایطی بوده که از لحاظ اقتصادی ما کشور رو تحویل گرفتیم حالا برای اینکه مردم ما خیلی دقیق‌تر بدونن وضع چی بوده من چند بار تاکید کردم که شرایط اقتصادی کشور شرایط رکود تورمی بود خب ما در سالهایی بوده در کشور ما که دارای رکود بودیم تولید رشد کافی نداشته. مثلا در یک سالهایی بوده که رشد اقتصادی ما منفی بوده. حتی منفی 9 درصد بوده. چه سالی؟ در سال 1365 ما رشد ما منفی بوده منهای 9 بوده. اما در این حال همون سالی که رشد ما منفی بوده تورم ما اونقدر زیاد بالا نبوده منهای نه بوده ولی تورم ما بست و سه درصد بوده یه سالایی بوده که تورم زیاد بوده مثلا یه سالی بوده تورم ما بوده چلونو درصد بوده تورم سال اول ده هفتا در سال هفتاد و چهار ده. در سال 1174 تورم ما چنون نه درصد بوده اما در این حال رشد هم سه درصد بوده اما اینکه که تورم بالا باشه بالای چل درصد باشه و روکوت هم و روشت هم منفی باشه یعنی رکود باشه این بی سابقه هست سال نوید و شما در سال نوید و یک میبینید که ما شرایط رشد ما منهای پنج ممیز هشته هم هست و از اون طرف تورم ما بالای سی درصد هست و در اون شرایطی که ما دولت رو تحویل گرفتیم شرایطی بود که تورم بالای چل درصد بود در مجموع بنابراین این شرایط که این حد رکود و این حد تورم در تاریخ پنجه ساله کشور ما بی سابقه است غیر از سال 57 و 58 که سال انقلاب بود و شرایط خاصی بر کشور حاکم بود در 50 سال گذشته یک همچون رکود تورمی در کشور ما سابقه نداشته این آمار و ارقام نشون میده که چه شرایطی از دولت گذشته به ارث به ما رسید و ما در چه شرایطی می با مشکلات دست و پنجه نرم میکردیم البته من این آمار ارقام رو میگم به خاطر اینکه مردم بدونن شرایط چی بوده نه این که ما از مشکلات به حراسیم و بترسیم ما مشکلات رو به حول و قوه الهی و با حمایت و کمک مردم حل خواهیم کرد ما از تنگناهای اقتصادی عبور خواهیم کرد خب شما میبینید در همین مدت کوتاه صد روزه خب در تورم ما تونستیم یک قدم مهم برداریم. اینقدر موضوع تورم برای من به عنوان رئیس دستگاه اجرایی مهمه که تقریباً هر دو سه روز یک بار من از مسئولین سوال میکنم و هر هفته من آمار میخوام از وضعیت تورم کشور. شما میدونید در ماه‌های گذشته هر ماه نسبت به ماه قبل تقریبا دو ممیز دو روند سعودی تورم بوده هر ماه نسبت به ماه قبل دو ممیز دو دو ممیز سه تقریبا روند بوده این دو ماه اخیر روند شده یک ممیز دو یعنی یک واحد کاهش پیدا کرده و این خیلی برای ما مهمه ما در حالی که در پایان ماه مرداد و شهریور تورم نقطه به نقطه ما 43 درصد بوده در پایان مهر ما تورم نقطه به نقطه ما شده سی درصد و این خبره بسیار خوشی هست از چهل و سه ما رسیدیم به حدود سی در تورم نقطه به نقطه بنابراین ما رشد تورم البته تورم که وجود داره رشد تورم سعود تورم رو تلاش کردیم مهار بکنیم و در این مدت مهار کردیم تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم و در سال آینده یکی ای از برنامه اساسی دولت مهار تورم خواهد بود ما برنامه ریزی ما برای سال آینده اینه که تا پایان سال تلاش کنیم تورم به کمتر از 25 درصد برسه یعنی از 43 درصد ما خواهیم رفت انشاءالله تا تورم 25 درصد تا پایان امسال آید رئیسمون پایان سال آتی پایان سال یعنی پایان امسال. البته پایان امسال هم ما البته با اینکه ماهای پایانی سال کنترل تورم خیلی سخت‌تر میشه از ماهای اولییه اما در این حال قول مسئولین ما این هست که تورم به 35 درصد خواهد رسید تا پایان سال بنابراین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 این کاهش تورم توی این مدت چجوری اتفاق افتاده و چرا دقدقه اصلی شما تورم مثلا بین تورم بیکاری، نرخ رشد اقتصادی منفی چرا تورم انتخاب کردین که مرتب رصدش بکنین؟ اینا همه سواله که وجود داره ولی میخوام از این فرصت استفاده بکنم و با توجه به شاخص کلانی که شما آمارشو فرمودین بپرسم که چجوری این اتفاق افتاده ما بین ساله ۸۲ تا نبد بیشترین درآمدهای نفتی طول تاریخمون رو داشتیم از فروش نفت خام کشورمون چجوری این اتفاق افتاده چه تعهداتی برای دولت به وجود اومده تعهدات دولت زمانی که شما کار رو به عهده گرفتین چه بوده چقدرش باقی مونده در این زمینه تازی به لطفا البته دولت گذشته یعنی 8 سال گذشته در واقع دولت نهم نه و دهم ده اگر بگیم پولدارترین دولت ما بوده خیلی حداقل در درآمدهای ارزین درآمدهای نفت و درآمدهای غیر نفتی شما میدونید که در طول 8 سال درآمد نفتی ما حدود 600 میلیارد دلار بوده که این رقم بی‌سابقه است شما تو 8 سال قبل 8 سال قبل هر چه برید نگاه کنید یه همچون رقمی رو پیدا نمی کنید مجموع 8 سال 600 میلیارد دلار مجموع 8 سال 600 میلیارد دلار پول نفت و گاز بوده و به اضافه اینکه خب ما درآمدهای دیگری داشتیم کشور از لحاظ درآمد ارزی حدود 750 میلیارد دلار درامد داشته در طول 8 سال خب دولتی که پولدارترین دولت بوده متاسفانه بدهکارترین دولت بود یعنی دولتی که به ما به ارس رسید حالا من چند رقم بدهی دولت میگم البته مسئولین اجرایی بعد ارقام رو دقیق و در بخش مختلف برای مردم توضیح خواهند داد من چند رقم میگم برای اینکه متلع باشن مردم عزیزمان بدهی دولت به سیستم بانکی در روزی که ما دولت رو تحویل گرفتیم در مرداد بیش از 74 هزار میلیارد تومان بوده. 74 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به سیستم بانکی بوده. بدهی دولت به صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی به این دو تا صندوق 60 هزار میلیارد تومان بوده. اونجا چهار هزار میلیارد تومان، اینجا هم 60 هزار میلیارد تومان. آمار و ارقامی که بخش‌های مختلف دولت به من دادن بدهی دولت به پیمانکاران و بخش‌های مختلف و بخش خصوصی حدود 55 هزار میلیارد تومانه. یعنی شما همین سه رقم رو کنار هم قرار بدید 74000 60000 55000 19000 البته موزن. ارقام دیگری هم هست. حالا بدهی صندوق‌های بازنشستگی نیروهای مسلح رقم‌های عجیب غریبی به ما گزارش دادن که حالا خودشون بعداً برای مردم توضیح میدن. رقم خیلی بالاتر از 200 هزار میلیارد تومانه. خب ما البته میدونستیم دولت به بدهکار هست، اما اینکه دولتی که بیشترین درآمد ارزی رو در 8 سال گذشته داشته، وقتی دولت رو تحویل میده به منتخبین بعدی مردم این همه بدهکاری و به اضافه تأهدات دیگر حالا اینا بدهکاریه یه سری تأهدات هم هست مثلا حالا من نمونه میگم برای مردم تو این هشت سال تو سفرهای استانی تأهداتی که داده شده دویست یازده هزار میلیارد تومانه تأهداتی که در سفر استانی هشت ساله دویست و یازده هزار میلیارد تومانه از این تعهد فقط سی و دو درصد انجام شده تعهدات اجرا شده شست و هشت درصد باقی مونده برای دولتهای بعدی از اون بر اعتباراتی که و تسهیلاتی که بنابوده در همین سفرهای هستانی به مردم تعهد شده 30 درصد این تحصیلات تحقق پیدا کرده و 70 درصد باقی مونده. اگر ما در مجموع بگیم چیزی حدود 30 درصد تحقق پیدا کرده، 70 درصد باقی مونده، معناش چی میشه؟ یعنی 16 سال دیگه. حالا اگر همون پول باشه و همون امکانات باشه، اون 8 سالی که اون همه درآمد نفتی بوده، اگر تو 8 سالهای بعد هم همون درآمد آب باشه، یعنی 16 سال طول داره برای اینکه اون تعهدات رو ما بتونیم عملی کنیم و اجرا کنیم. عمر و ارقامی که مسئولین به من دادن، پروژه‌های عمرانی که در کشور ما الان پنهان شده، کلنگ زده شده، شروع شده، بخشش اجرا شده 400 هزار میلیارد تومان تعهد. یعنی سالیان دراز، حالای امسال که در اون پنج ماهی که دولت قبلی بوده در بخش عمرانی سه درصد منابع تحقق پیدا کرده از ست درصد سه درصد من در اینجا میخوام اشاره کنم با اون سوالی که شما کردید که خب با این مشکلات شما میگید تورم تا حدی مهار شده جلوه رشت این تورم این رشت کاهشی شده شما اگر تو بخش های مختلف آمار و ارقام نگاه کنید میبینید که اون رشت حالت تنزل پیدا کرده البته تورم حالا مدتا باقی است همونطوری که من گفتم باید به تدریج این تورم برگرده به یک نقطه مطلوب و درست قرار بگید اما چرا این تورم درست شد چرا اینجوری شد من میخوام دو تا نکته رو اینجا به عرض ملت بزرگ ایران برسونم. اولین عامل بزرگ تورم رشد بی‌حساب نقدینگی بود در جامعه ما. در سال 84 نقدینگی ما 68 هزار میلیارد تومان بود. در پایان دولت چیزی حدود 472 خورده ی هزار میلیارد البته الان که از پونسد هم عبور کرده ولی حالا 472 خورده ی هزار میلیارد شما 68 به پونسد در نظر بگیرید هفت برابر شده نقدینگی کشور هفت برابر شده برای اینکه روشندتر بشه یک بخشی از این نقدینگی مربوط میشه به بدهی دولت در واقع به سیستم بانکی و شما میبینید که خب وقتی نقدینگی اضافه بشه تعهد دولت اضافه بشه از بانک مرکزی مرتب استقراز بشه اونم پول پرقدرت چه مشکلی رو برای مردم ایجاد میکنه نقدینگی از یک طرف حالا نقطه دیگری تو همین بحث نقدینگی و همین تورم من اعرض کنم مسکن مهر برای افرادی که افراد کم درآمد جامعه ما بودند طراحی شد خب همه گفتیم کار خوبی شده هیچ کس نمیتونه منکر باشه که ساخت مسکن برای مردم کار بسیار خوبی است کار ارزشمندی است هیچ کس منکر این نیست بهتر مناظره انتقاد بودید شما به شیوه حالا من همین نکته رو میخوام بگم مسکن ما بسازیم اما چجوری کجا بسازیم با چه شرایطی بسازیم حجمش چه مقدار باشه از همه مهمتر پولش از کجا بیاریم اگر ما پول مسکن رو از جیب تک تک مردم درآورده باشیم چی مسکن مر تا کنون 43 هزار میلیار تومان برای مسکن مر از بانک مرکزی استقراس شده یعنی پول از بانک مرکزی گرفته شده داده شده به بانک مسکن که وام کل پایه پولی کشور از اون اولی که پول خلق شده تا حالا 100 هزار میلیارد تومانه پایه پولی کشور از این 100 هزار 43 هزارش مال مسکن مهره یعنی 43 هزار از این خلق پول و نقدینگی حالا نقدینگی که سر جای خودش این پایه پولی که وقتی میاد تو جامعه چون پول پرغدرت چند برابر میشه چهل و سه هزار میلیار تومان از بانک مرکزی استقراض شده یعنی چی؟ یعنی بخش بزرگ تورم ما از اینجا نشاد میگیره شما وقتی پول پرغدرت رو از بانک مرکزی میگیرید و میارید تو جامعه که این نقدینگی رو چند برابر میکنه اون پول حدود پنج برابر میشه اون نقدینگیست که تورم با به وجود میاره به یک معنا ما میتونیم بگیم که تورمی که مردم ما درن تحت فشار قرار گرفتن یک بخش بزرگش مربوط به مسکن مهره خب من خواهش بکنم از مسئولین محترم بخش های مختلف دولت برای مردم بیان توضیح بدن وزارت اقتصاد دارایی بانک مرکزی بیان توضیح بده این 43 هزار میلیارد تومانی که از بانک مرکزی گرفته شده برای مسکن مهر چه مقدار تورم خلق کرده؟ چه مقدار از این تورم مربوط به این 43 هزار میلیارد تومانی؟ البته در اینجا تو پرانتز بگم مقصد من از این بحث این نیست که ما مسکن مهر رو تکمیل نکنیم. به هر حال تعهدی که دولت قبل به مردم داده، این دولت خودش رو متعهد میدونه. قراردادهایی که با مردم دولت قبل راجع به مسکن مهر داشته، این قراردادها از ذر ما محترمه و این دولت متعهد خواهد بود. دولت برای مسکن مردم تر خواهد داشت و بعدن این تر رو به مردم عرضه خواهد کرد اما میخوام بگم این تورمی که شما سوال کردید از کجاست یک بخش بزرگش مربوط به مسکن مهر میشه یعنی ما کاری رو انجام میدیم یک بخشش به نفع مردمه اما چون تدبیر نیست تدبیر نیست، حساب و کتاب نیست و بعدم پولی که ما در واقع تورم یعنی مالیات فقرا دیگه، معروف دیگه به حال مالیات فقرهاست آیا از مردم اجازه گرفتیم؟ آیا از مردم ازن گرفتیم؟ که از پول جیب فقرا ما بگیریم برای ادهی مسکن درست کنیم مسکن خیلی کار خوبیست، خیلی کار عرضشمندیست تا اونهایی هم که صاحب مسکن شدند حتما نفس راحتی کشیدند حالا زمین اینکه خود این مسکن این مشکلات فراوانی برای تسهیلات داره برای حمل و نقل داره مسائل جانبیش مراد حالا اونها سر جای خودش و باید هم تکمیل بشه باید هم به تعهدی که دولت به مردم داده این دولت خودش متعهد میدونه و عمل میکنه اما من خواستم به سوال جناب علی اشاره کنم و پاسخ بدم که این تورم چجور درست شد حالا چجور ما میتونیم این تورم رو مهار بکنیم همین را با برهان خلف میتونیم بهش برسیم که چجوری میتونیم تورم رو مهار بکنیم اگر ما نقدینگی جامعه رو رشدش رو مهار بکنیم و الان آمار و ارغام نشون میده در همین دو ماهه همین دو سه ماهه این رشد متوقف شده و حالت نزولی پیدا کرده دلیل این که ماهای گذشته دو ممیز دو بوده و حالا شده یک ممیز دو همینه که ما نقدینگی رو داریم کنترول میکنیم و مهار میکنیم مخصوصا اونجایی که بحث پایه پولیس بحث پول بانک مرکزی است که اونجا باقید حواستمون خیلی جمع باشه که داریم چه کار میکنیم و چجوری از این پول استفاده میکنیم و بهره بهرورداری میکنیم این سوال یه جور دیگه بپرسم آید دکتر روحانی شما چگونه میخوایی تبرم و کنترول بکنید ولی هدفمند کردن یارانه ها رو ادامه بدید که میفرمایی تأثیر داشته توی رشد نقدینگی و مسکن مه رو هم اجرا بفرمایید. یعنی به نظر میرسه که بین تعهدات شما و اهدافی که دولتتون حدیقا در حوزه اقتصادداری یک کمی تعارض وجود داره شما انتقاد کردید از نحوه اجرای کردن در کشور؟ و قاعدتا ملزم هستید به اجرای فاز دوم هدفمندی چگونه این کار صورت خواهد گرفت که هم تورم کنترل بشه همون کارها انجام بشه خب شما در واقع دو تا مبحث رو مطرح کردید اینجا یکی بحث یارانه ها رو مطرح کردید که دولت میخواد چی کار بکنه من در اینجا لازم به عرض مردم شریف برسونم که دولت برای پرداخت و ادامه پرداخت یارانه نقدی هر ماه باید 3500 میلیارد تومان پول برای این یارانه پرداخت کنه. طبق قانون می‌بایست پول یارانه از افسایش قیمت‌های حامل‌های انرژی و سایر موارد به دست بیاد از اون طریق تأمین بشه. تقریبا اون پول یه چیزی حدود نصف این مبلغ رو یه خورده بیشتر از نصف تأمین میکنه بقیهش باقی میمونه یه بخشیش ما باید از مصبابات مجلس و منابع بوجهی ما استفاده بکنیم که استفاده میکنیم در این حال هر ماه ما کسر داریم برای اینکه این 3500 میلیارد تومان رو به عنوان یاران پرداخت بکنیم دولت حتما باید روند پرداخت یارانه ها رو اصلاح بکنه. ما دو راه داشتیم. یا می یارانه رو کاهش بدیم برای که این کسی تأمین بشه. خب دیدیم مردم به عهال برای این مخصوصا اقشار کم درآمد به عهال رو این یارانه حساب کردن رو خارج زندگیشون وعده بخوایم یارانه رو کم بکنیم. برای اخشار کم درآمد خیلی مشکل آفرین خواهد بود. راه حل دیگه این بود که به یک بخشی از جامعه یارانه ندیم. یه بخشی که کم درآمدن یارانه بگیرن چون اساساً این یارانه درست شد برای اینکه وقتی قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنه مثلا رو حامل‌های انرژی بشه جبران بشه زندگی اخشار کم درآمد. منتهی دولت مشکل داشت برای اینکه به کی پرداخت کنه به کی پرداخت نکنه در نهایت به همه داد. ما خیلی فکر کردیم که چجور میشه افرادی که نیازمند نیستن یارانه نگیرن و بقیه مردم بگیرن. راهای مختلفی پیش بیاید شد. به هر حال ما امسال از اون تحرایی که پیش بیاید شده بود صرف نظر کردیم به دلیل این که برای اینکه بفهمیم کی نیاز نداره به یارانه راحل های پیشبینی شد که ما دیدیم که به زندگی خصوصی مردم ما باید دخالت بکنیم خب بریم نگاه کنیم حساب بانکی مردم چه خبره نمیدونم املاک مردم چگونه است دخالت در زندگی خصوصی مردم مطلع شدن از حساب بانکی مردم ممکنه برای کتاه برای یه موضوعی مفید باشه ولی حتما به ضرر کشوره ما باید به مردم اطمینان بدیم مردم باید اعتماد کنن به سیستم بانکی ما اعتماد کنن اگر ما بخواهیم در زندگی خصوصی مردم اینچنین مداخله بکنیم و دخالت بکنیم اعتماد مردم سلق خواهد شد رونق اقتصادی از بین خواهد رفت یکی از هدفهای ما تو همین بحث تورمی که شما اشاره کردید یه طرفش کنترل نقدی نگیز یه طرفش بهبود فضای کسب و کاره بله. رونق تولید باعث میشه میشه رونق تولید رو در جامعه به وجود آورد کسب و کار بهبود پیدا کنه فضاش اما در این حال ما بریم کندوکاف کنیم تو زندگی خصوصی مردم کی چقدر پول داره کجا قایم کرده چیکار کرده البته خیلی هم کندوکاف نیست واقعا میشه به شیوه های حیات بانکی یا شیوه هایی که خیلی دخالت در امور داخلی مردم اون بانکی هم همین میشه که اون وقت مردم اعتماد نمی کردن به بانک پولشون رو می تو از بانک خارج میکنن ضررش بیشتر از منفعت و در مجموع ما ضررش بیشتر از نفعش خواهد بود Halla, <minnuh> <menaut> men bara för att människorna våra dröjer i kvarterer inte ner har vill ha för att ner. för att förbättra de härjar ner. دقیق باشه البته مرحله دوم یارانه رو هم دولت مصمم سال آینده عملیاتی و اجرایی بکنه نه امسال ما میخواییم اول تورم تو حدی مهار بکنیم سیستم بانکی رو تو یه حدی اصلاح بکنیم همزمان اون وقت میریم سراغ بخش دوم در بحث یارانه البته یک اقداماتی هم دولت امسال برای اقشار کم درآمد انجام خواهد داد در حد توان این دولت که به هر حال آغاز کار هست و مشکلاتی که دولت داره ما ان برای اقشار کم درآمد جامعه تا پایان سال دو بسته کالایی رو ان به مردم تقدیم خواهیم کرد. گروه‌های مثل تحت پوشش و کار اونا که قابل شناسایی ن یا شکل دیگری هم؟ دیگه حالا افرادی که کارمندان کارمندان دولت، اخشار کم درآمد برای اینکه تا پایان سال در کنار البته اون یارانه رو دست نمی‌زنیم. اون یارانه نقدی شده. سر جای خودش هست اون یارانه هست دست نمی‌خوره. در کنار اون برای اخشار کم درآمدم ان‌شاءالله در دو نوبت دو تا بسته کالایی مدنظر نظر قرار میگیره چقدر ارزشش تقریبا حالا این بسته اعلام میشه کالای خاص میشه بله هم زمانش اعلام میشه هم مقدار اون بسته اعلام میشه این ان اعلام خواهد شد البته یک گزارشی هم وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی داده بود راجع به وضع دانش آموزان در مدارس و زرورت اینکه باید از لحاظ سلامت این دانش آموزان، رشد این دانش آموزان دولتی اقدامی بکنه. دولت تصمیم گرفت که از همین ماه تماهزر انشالله توزیع شیر رایگان رو برای مدارس انجام بده. هم برای دوره ابتدایی در سراسر کشور، هم, هم اون بخش اول متوسطه، سه سال اول متوسطه. در واقع از کلاس اول تا کلاس نهام باره بشه قدیم برحال انشالله اینم از همین ماه شروع میشه توضیح شیر رایگان اینا قدمهای های کچکیست که دولت انشالله تا پایان امسال برخواهد داشت همون دو بسته کالایی رو هم بسته شیر رایگان رو اما اقدامات اساسی که دولت در بخش اقتصاد انجام خواهد داد داره برنامه ریزی میکنه برای سال آینده در سال آینده همطور که من اشاره کردم چند هدف مهم رو این دولت دنبال خواهد کرد. بغیر از اون بحث فضای کسب و کار که ما تکیه ما به اینه که بخش خصوصی ما فعالتر شد در جامعه. بتونیم تصفیلات لازم رو فراهم میکنید. میدونید که دولت تو این صد روز قبلا من به عرض ملت ایران رسوندم که ما در دولت 35 تصمیم گرفتیم برای تسهیل در مسائل اقتصادی به ویژه در تولید در صادرات در بحث گمرکات در بحث پیشپرداخت هایی که مردم میخوان انجام بدن السی هایی که میخوان باز بکنن و پیشپرداختی که باید انجام بدن تسهیلات گمرکی که باید انجام بگیره سیوپانج مصوبه دولت گذران که این مصوبات ابلاغ شد الان میتونم بگم همه این 35 تا عملیاتی و اجرایی شده همه اینها عملیاتی شده اجرایی شده و داره اجرا میشه علاوه بر این در بخش کشاورزی دولت تلاش زیادی کرد میدونید که نهادهای کشاورزی که کشاورزان دوچار مشکل بودن دولت تونست اونا را تحمیم بکنه انشالله با کاری که دولت انجام داده من امیدوارم سال آینده وضع محصولاتی که ما بسیار بهتر باشه از آنچه که ما امسال شاهد بودیم شما میدونید که ما امسال ناچار شدیم اقدام کنیم برای بیش از 7 میلیون تن گندم برای واردات 7 میلیون تن گندم. 72 هم تقریبا ما باید گندم امسال وارد کنیم امیدواریم انشاءالله سال آینده وضع ما بهتر بشه نه تنها در گندم در همه محصولات کشاورزی شما میدونید قیمت تضمینی رو برای اولین بار ما تو شهریور اعلام کردیم برای اینکه کشاورزا مطمئن باشن بتونن تلاش بکنن تسهیلاتی که لازم بوده در بخش‌های مختلف ما در اختیار کشاورزان قرار دادیم در ماشین‌آلات اقدام بسیار موثری برای بخش کشاورزی شده حتما انشالله وضع بهتری در کشاورزی خواهیم داد من همینجا میخوام درود و سلام خودم رو و همه دولت رو به کشاورزان عزیز برسونم که واقعا بار امنیت غذایی بدوش اونهاست بار استقلال کشور در بخش مواد غذایی و محصولات کشاورزی بردوش اونهاست و حضور اونها در حماسه 24 خرداد بسیار ارزشمند بود کشاورزان عزیز ما، روستاییان عزیز ما و ان در این زمینه اقدام خوبی انجام می‌گیره. ضمنی که می‌دونید در بخش دارو هم دولت اقدامات بسیار مهمی رو انجام داده. تقریبا کمبود دارو مرتفع شده به طور کامل و قیمت دارو نسبت به گذشته بسیار متناسب شده. برای اون‌هایی که بیماری‌های صواب العلاج دارن بیماری های خاص دارن تسهیلات لازم برای تامین داروی اونها پیش بینی شده وضع دارو ان بهتر هم خواهد شد با اقداماتی که دولت داره انجام میده اصولاً بخش سلامت ما قدم های جدی داره برمی داره البته کمبودهایی از لحاظ منابع مالی داره ان دولت اونها رو تامین خواهد کرد میدونید تیم های مختلفی در سراسر کشور به مناطق محروم الان متخصصین دارن اعظام میشن برای رسیدگی به امر سلامت مردم اقدامات بسیار خوبی در زمینه سلامت الحمدلله دولت در این صد روز اقدامات بسیار خوبی رو البته نه در شهن ملت ایران در حد توانش و در حد امکانش و در فرصت صد روز البته خب به اندازه صد روز میشه کار کرد و در این حال برنامه‌ریزی‌هایی که دولت برای آینده داره برای سال آینده ما چند تا برنامه رو مد نظر داریم یکیش بحث مرحله دوم یاران است که داریم فکر می‌کنیم و طراحی می‌کنیم که سال آینده اجرا بشه یکی مهار تورم هست که گفتم ما سال آینده برنامه ما اینه که تورم رو انشالله برسونیم به زیر 25 درصد تا پایان سال 93 و امسال هم به 35 درصد برسونیم تا پایان امسال در رشد اقتصادی که خب وضع ما امسال گفتم در سال 91 آمار منهای چند بود 4 چندمایس هفت چند 5مایس هفت خیلی خوب با حفظه شما که اقتصادی اقتصادی حواشی تخصصم تفسیر شد و <تصفيق> با این بالا شد <تصفيق> در <تصفيق> در سال 91 رشد اقتصادی ما متاسفانه منفی بود منهای پنج ممیز هشت یعنی اقتصاد ما شیش درصد حدوداً کچکتر شد درست اقتصاد درست. ما شیش درصد کوچک شد دقیقاً این حرف درسته. اقتصاد ما در سال گذشته شیش درصد کوچک شد یعنی صفره مردم هم شیش درصد خالی شد حداقل. تلاش ما اینه که امسال یعنی در سال نوید و دو انشالله به هو لو به الهی در پایان امسال کاری بکنیم که این منهای 5 و پنج منهای 5 و 8 دهم ان به صفر فیا حتی درصدی البته یک درصد من بعید میدونم ولی تلاش ما اینه ی نیم درصدی رو مثبت کنیم یا لا به صفر برسانیم تلاش ما اینه همه برنامه‌ریزی ما اینه ولی سال آینده ان تلاش ما اینه که رشد اقتصادی ما حداقل مثبت 3 باشه یعنی 3 درصد سال آینده یعنی پایان 93 انشالله آمار الله آمار و ارقام مشخصه چون رسیدیم به چشم من ما اگر نمی‌رسیم ان امیدواریم دولت تلاش خودش را خواهد کرد برای اینکه خب می‌دونید رشد اقتصادی باید 8 باشه حداقل سالانه اگر این سال اتفاق نذ نمی افتاد و متوسط 8 میموند اگر میموند حالا باید همه اونها باید جبران بشه و اقدامات زیادی باید انجام بگیره ان این کار خواهد شد البته خب ما بحث مهار تحریم رو هم داریم که عمید. حالا یا مربوط به بخش شما میشه مثلا یا اینکه ما تا این تحقیق بخشی نکردیم پایان همین بخش اقتصادی این تخصصی آید افت برداشت تحریم تخصص ما اقتراش تحریم تخصص آمریکایی است ولی برداشتارش تخصص, تخصص البته ما, برای ما برای سال آینده ما برای سال آینده تلاش ما اینه اگر بتونیم نرخ ارز رو هم یعنی یکسان سازی نرخ ارز جز و هدفهای ما در سال 93 است این تلاشه خواهیم کرد چون میدونید که این تفاوت قیمت ارز خیلی مشکلات درست میکنه اصلا یکی از مشکلاتی که اون دولت باش مواجه شد حالا خانم سپانلو سوالش تکمیل بکنیم بعد بیاییم تو بحث تحریم یکی از مواردی که دولت واقعا دوچار مشکل شد این که مجلس گفته بود که دولار از 1224ی باید بشه 2500 تومن حالا 2477 تومن حالا رقم قانونی که مجلس در قانون بودجه اعلام کرد دولت می بایست در اول تیر ماه نرخ دلار رو از می برد به 2400 یا 2500 یا 2477 متاسفانه دولت قبل این کار رو نکرد و ما وقتی اومدیم مواجه شدیم با این مشکل یعنی در واقع دولت بباید خیمت ارز دو برابر می کرد معنیش این بود که همه کالاهایی که وارد می شه دو برابر بشه و ما محاسبه کردیم دیدیم مردم دوچاره چه معزل بزرگی خواهند شد خب ترایی کردیم برنامه ریزی کردیم بعضی از موارد با پرداخت یارانه مثل بخش نون، گندم، اینها رو ما نگهت داشتیم به همون قیمت در بخش دارود همین کار داریم میکنیم تقریبا با پرداخت یارانه یه بخش های هم با یک شیب بسیار ملایمی ما رسوندیم به همون قانون دو تومان اما با یک شیب ملایمی که فشار به مردم وارد نشه. اینکه بعضی از مردم میگن آقا این دولت جدید چرا گرون شد؟ بعضی از کالاها حالا گرچه ما خیلی شیب ملایم بوده تلاش کردیم برخی از موارد من خودم مداخله کردم برای اینکه قیمتها خیلی بالا نره و فشار به مردم نیاد اما مردم بدونن که باری به دوش این دولت افتاد که دلار رو قیمتش دو برابر کنه طبق قانون مجلس در حالی که این قانون میبایست قبلا اجرا میشد در دولت قبلی و پیاده میشد به حمدالله ما از این پیچها به سلامت عبور کردیم به خوبی عبور کردیم مردم البته خیلی یاری کردن مردم خیلی کمک کردن حضور مردم تلاش مردم حمایت مردم دعای مردم ما اینقدر از مردم ممنون هستیم که حد نداره و اگر حضور و تلاش و حمایت اونها نبود و هدایت مقام و معظم رهبری نبود ما به این خوبی نمیتونستیم از این مشکلات به خوبی اوبر کنیم حالای دفعه خیلی الان درست سر پیچم قرار دارید شما سر پیچید تو این خیلی در عرصه اقتصادی در کوتاه مدت جای مانور ممکن نداشته باشید از ابزار سیاست خارجی که من فکر می‌کنم واقعاً تخصص شما هم هست خیلی خوب استفاده کردید در واقع به اصطلاح فوتبالی‌ها با توپ سیاست خارجی گل اقتصادی زدید واقعاً حالا عادی که ظریفم لوک حمله و فوروارد فوروارد خیلی خوبی ام بود با چه روشی در این مدت به این ظرفیت از ب... یا به این سطح پیشرفته سیاست خارجی رسیدید سیاست خارجی جزو اولویت های این دولت بود و همین رو هم به مردم اعلام کرده بود البته این معناش این نیست که از در این دولت سیاست های فرهنگی یا سیاست داخلی یا اجتماعی اهمیتش کمتره. به خاطر مشکلی که به هر حال کشور باش مواجه بود به این دلیل دولت براش اولویت خائل بود میدونید در سطح جهانی متاسفانه دشمنان یک ایران حراسی رو در سراسر جهان به وجود آورده بودند روابط دولت با دنیا در حد بسیار پایینی قرار گرفته بود بجز یه تعداد از کشورهای محدود روابط با دنیا کاهش پیدا کرده بود مشکلات فراوانی برای ایرانیان بود برای ایرانیان داخل برای ایرانیان خارج <تصفيق> که ما در این سفرهای خارجی در بیشکهکور نیویورک وقتی با ایرانی‌ها روبرو شدیم دیدیم واقعاً چه شور و عشقی نسبت به وطنشون دارن واقعاً همون عشقی که مردم داخل دارن شاید یه مقدار شاید بیشتر. بیشتر وقتی اونا چون از آب دور شدن قدر آب بیشتر میدونن به هر حال با چه شعوری شوقی و واقعا سرمایه بسیار عظیمی هستن سرمایه انسانی بسیار بزرگی ما در خارج از کشور اینشالله همه اونها میان کمک میکنن و کمک کردن تو این چند ماه و کمکشون رو اضافه میکنن حالا منظور کمک مالی و اقتصادی که نیست معمولا ما بهشون به عنوان سرمایه اقتصادی یا مادی نگاه کردیم برحال کشور مال خودشونه کمک مالی هم بکنن کشور مال خودشونه کمک علمی هم بکنن کشور مال خودشونه همایت معنوی هم بکنن کشور مال خودشون ایرانیان یک قدرت بزرگی در دنیا هستن تو همین دیپلماسی اصلا من بحث مالی و اینها رو مطرح نمی‌کنم تو همین دیپلماسی عمومی ایرانیان نقش بسیار زیادی میتونن داشته باشن تو آمریکا تو اروپا تو سراسر جهان تقریبا تو همه کشورها ایرانیان بخش بزرگشون از نخبگان اون جامعه هستن اساتید، بزرگان، پزشکان، متخصصین و میتونن بسیار نقش داشته باشن. به هر یک شرایطی ایجاد شده بود هم برای داخل، هم برای خارج، هم برای ایرانیان داخل و خارج. و از طرفی هم خب یک فشار ظالمانه‌ای که به مردم وارد شده بود به بهانه مسئله هستی. خب شما میدیدید چه وضعی مردم دارن بحث البته نمیخوام بگم ما مشکلات اقتصادی ما همهش مربوط به تحریمه عمدتا مربوط به بیتدبیری بود مشکلات اقتصادی ما شما بینید درست در شرایطی که ما میرفتیم به سمت تحریم و دولت هم میدونست به سمت تحریم میریم و میگفت تحریم همون کاغذ پاره بیشتر نیست وابستگیش به خارج در وقش اقتصادی بیشتر میکرد واردات وابستگیش یعنی اون واردات به به تعب... تعبیر دیگر شما میدونید در سال قبل از 84 سالهای قبل ما واردات ما حدود 38 میلیارد بوده بعد به کجا رسید به 75 میلیارد رسید در سال در سال 90 و شما میبینید که شما وقتی با دنیا در حال مبارزه هستید باید به خودتون تکیه کنید به داخل تکیه کنید با شعار که نمیشه با دنیا مقابله کرد البته نهی که ما از فشار دنیا بترسیم اما باید تدبیر کنیم بیستیم در برابر دنیا اولین راهش اینه به خودمون متکی بشیم واردات رو کم کنیم اینکه به مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی بارها و بارها تاکید کردن به همین دلیله کشوری که میخواد وایسته باید رو پای خودش وایسته است... اقتصاد مقاومتی استقامتی نه اینکه هی تکیه بیشتر بگیره حالا من یک آمار اینجا حالا از بس شما برمیگردید بس بحث شما برمیگردید دو مرتبه من پوشانی هم که بر من من یه آمار به شما بگم از سال 1379 تا سال 1383 ابتده امار ارغام اینجا هست، هر کجا من حافظم یاری نکرد، مراجعه می‌کنیم بشید حالا، حالا، حنوش نیاز بده نگردیم ولی مراجعه می از سال 1379 تا سال 1383 هر سالی در بحث گندم. حالا پخشای دیگر کشاورد زیم هر سالی خرید ما از کشاورز داخلی یک میلیون تن اضافه شد. حدوداً سالانه. به طور طبیعی خرید ما از خارج یک میلیون تن کم شد. تا سال 1383 ما در گندم خودکفا شدیم، می‌دونید که. دو دفعه اعلام شد خودکفایی شدیم، در, در سال 1383 ما بیش از 11 11.4 بیش از 11 میلیون تن خرید ما بود از کشاورزای ما هیچ نیازی هم دیگه نداشتیم به خارج از سال 1384 به بعد 85-86 به بعد هر سال خرید داخلی ما یک میلیون تن کم شده و خرید ما از خارج یک میلیون تن اضافه شده تا جایی که امسال ما ناچاریم بیش از هفت میلیون چقدر گفتم قبلا؟ هفت و چقدر؟ اقتصادی خانون سباید هفته دو ده هم ما امسال طبیقه براورد باید هفته دو ده همه میلیون تن گندوم بارد کنیم ما وقتی با دنیا مبارزه می کنیم با دنیا که نه با قدرت ها با چند تا از این قدرت های غربی ما مقابله می خواهیم بکنیم باید خودمون آماده بکنیم و متاسفانه عمل ما با شعار ما سازگار نبود یکی از مشکلاتی بود که کشور باش مواجه بود انشاءالله امیدواریم قدم به قدم حرکت ما به این سمت باشه که به سمت خود خودعتقایی بیشتر به سمت تکیه بر کشاورزان داخلی ما ما البته کارهایی که تو سالایی اخیر کردیم شغل زیاد درست کردیم منطقا برای چینی ها برای کره جنوبی، برای دیگران مراتب شغل ما اضافه کردیم. در داخل ما مشکل اشتغال داشتیم، و حضور اقتصادی ما در سهنه بین المللی چقدر ضعیف بود و ما امروز انشالله شرایطی به تدریج داره ایجاد میشه که حضور ما در سهنه بین المللی بیشتر بشه، پررنگ بشه در همه زمینه‌ها. حالا شما اشاره کردید به اون نکته‌ای که ما به هر حال در زمینه سیاست خارجی چه توفیقاتی رو به دست آوردیم من البته اینجا هم از آقای دکتر زریف هم از همه وزرا از همه رو از, از همه مسئولین تشکر میکنم سپاسگزاری میکنم انصافاً تلاش مجددانه ای کردن ان حالا گزارش 100 روزه رو هر یکی از وزرا اعلام خواهند کرد مردم خواهند دید همه در حد خودشون تلاش وافری کردن در سیاست خارجی خوب قدمهای بسیار خوبی برداشته شد. از اولش هم با بهار خوبی رو... گفت گفسلی نکوس از, از بهاری پیداست. خوب اون روز تحلیف شما دیدید پنجاه و پنج هیئت از دنیا در تحلیف شرکت کردند. نه در سطح پایین این پنجاه و پنج هیئت دو تاشون رئیس جمهور بودن، دو تاشون نخست وزیر بودن، شش تاشون رئیس مجلس بودن، و... تا وزیر خارجه بودن، باقی وزرا بودن. 55 کشور در مراسم تحلیف شرکت کردند بعد خب در سفر اجلاس شانگهای در بیشکک شرایطی پیش آمد که ما با دو قدرت بزرگ از پنج قدرت بزرگ شورای امنیت چین و روسیه چین و روسیه تونستیم ملاقات‌های بسیار مهمی در بیشکک داشته باشیم پایریزی بسیار خوبی کردیم برای روابط بین ما و روسیه بین ما و چین و به همدلله اون توافقاتی که ما در بیشکک کردیم شروع شده عملا و آغاز شده چه, خلاصه بگید چه توافق مهمی میکردید ما توافق ما با این کشورها هم در بخش اقتصادی بود هم در بخش سرمایه گذاری اونها در ایران بود و فایننس بود هم در بخش سیاسی بود هم در بخش فرهنگی بود البته خب با برخی از این کشورها برخی از فناوری‌های علمی هم باز مورد توافق بود که همکاری با هم داشته باشیم قدم‌های بسیار خ... البته ما با پنج قدرت تقریبا از چین ما شروع کردیم به روسیه آمریکا اخیرا هم نه با انگلیس دیگه این تلفن اخیر ما با آقای کامرون بود که آخریش بودیم پنج تا به هر پیشنهاد از طرف شما بود یا از طرف اونها بود کجا با... تلفون با کامرون ما برای اجلاس جنف کلن به هر پنج کشور پیغام داده بودیم که میخواییم با اینها مذاکراتی داشته درسته. باشیم اونا تلفن کردن ولی پیغام اولی از طرف خب. ما حلا. بود که هم با چین صحبت کردیم هم با روسیه صحبت کردیم هم با انگلیس صحبت کردیم آقای دکتور هیچ کس باقا تو کشور به اندازه شما ظرف این ده یازده سال گذشته با قضیه هستهی گیره نخورده من خودم شخصا یادم به عنوان خبرنگار اون مذاکرات سعد و گفتگوهای شما با ترویکای اروپا رو تو اون شرایط سخت هم خیلی خوب میتونستید باشون تعامل بکنید یک رفاقتی ضمن رعایت مسائل رو همیشه داشتید اون قفل هستی اون روزا باز نشد تو 8 سال بعد هم باز نشد اتفاقی که الان دارم یفتی اینه که ما به مردم صدای باز شدن این قفل رو دارن میشنوند دیگه نگرانی هم زمن این همه خوشحالی و هیجان هست که مبادا کلید شما توی قفل گیر کنه خوده نکرده بشکنه واقعا میخوام ببینم که شیخ دیپلمات که تونست این مسیر, مسیر طولانی رو توی این دو ماه به این سرعت طیب بکنه. میتونه واقعا این گره اصلی سیاست خارجی رو باز بکنه یا همچنان جای نگرانی هست کلید, کلید تونم... که مال ما نیست <تصفيق> کلید مال مردمه. همه جا کلیت دست مردم بوده باور کنید باور نم تارف نمی کن. حضور مردم حمایت مردم اصلا این مردم دنیای از شورن من که واقعا من با امان یه عضو کوچک از این مردم آدم احساس کوچیکی میکنه در برابر عظمت این مردم در برابر فداکاری مردم کی باعث شد این غفباز کنه استقامت مردم استادگی مردم باعث شد حضور مردم در اون حماسه 24 خرداد باعث شد اگر این مردم نمی آمدن اگر اون حماسه سیاسی که مقام معظم رهبری به اون تحکید کردن اون نظر مقام معظم رهبری اگر اجرا می شد اگر مردم نمی آمدن اون حضور فعال پیدا نمی کردن کنار صندوق ها ما کلید داشتیم کلید حضور مردم هست کلید حمایت مردم است. البته دولت هم خب به عنوان خادم مردم به عنوان کسی که کارگزار از طرف مردم هست تلاش میکنه برمان این برمار. در باز شده آقای دکتر کامل یا نه آقا یه غفل نیست یه کشواه شده آقا قرار میگن چند تا غفل حالا تو همشون هم در واقع هم نباز نبسته هست و از البته یه ادهی این بچه ها دیدید گاهی میرن در این مغازه‌ها قدیم می‌رفتن یه خورده شکر تو آب حل می‌کردن می‌ریختن تو قفل خب شب صبح <تصفيق> طرف که میامد وا کنه هرچی کلید می‌نداره وا نمی‌شد یه دید در دنیا دنبال اینن که این قفله کاری کنن وا نشه حالا ممکنه تو داخلم بعضیا باشن بخوان کودکانه عمل کنن اما تو داخل که الحمدلله وحدت و انسجام و تو مسائل ملی ما الحمدلله یک وحدت و انسجام بسیار خوبی ما امروز شاهد هستیم البته هنوز خیلی راه باغی است من حالا از بحث شما باز میرم به بحث دیگه واقعا هر چه ما بخوایم به دست بیاریم از وحدت و انسجام داخلی میتونیم به دست بیاریم با تفرقه و اختلاف و هر چه آتش که داره خاموش میشه اصلا داره خاموش میشه آتشی نیست یه دی باز میدونن هیزم میارن فوت میکنن دو مرتبه میخوان روشن بعضی ها مثل که از این شعله آتش اختلاف خوششون میاد دست به دست هم بدیم فقط با انسجام میتونیم از تمام پله های پیشرفت بریم بالا به بام برسیم به بام پیشرفت بلند در منطقه و جهان برسیم تو هسته اگر ما امروز پیشرفت داریم به خاطر هدایت مقام معظم رهبری است، به خاطر حمایت مردمه به خاطر حضور مردمه البته کارشناس ما دیپلومات ما دولت ما هم سهم داره تلاش میکنه کوشش میکنه من در بحث هسته به مردم اطمینان میدم که با تعبیر شما اولین قفت باس شده ما اون ساختمان تحریم رو پایهش لرزوندیم هیچ شک نکنن مردم حالا بعضیا شعار میدن یه چیزایی میگن تو دنیا حالا چاره ندارن به هر حال باید صورت سرخ باید نگه دارن ما پایه این تحریم رو لرزوندیم به هر حال سیستم بانکی و روابط بانکی ان شاءالله وقتی اجرایی بشه این توافق در آخر ما متحول میشه سیستم بانکی تو این توافق آمده دیگه هیچ تحریم جدیدی انجام نخواهد شد خود این یعنی محدود کردن تحریم یعنی مهار تحریم خب خیلی تلاش میکردن که ایران منزوی باشه امروز کی منزویه؟ دشمنان ما منزوی ایران از همیشه در سحنه بین المللی فعالتره واقعاً اون فضایی که ما در نیویورک دیدیم، اون فضایی که در بیشکک دیدیم اصلاً فضا فضای همونی که وزیر خارجه ایتالیا گفت. گفت فضا فضای رقابت دنیا به سمت ایرانه. شنیدیم که گایقات سفائی هم تشکیل میشد برای ملاقات با جناب لی. حالا به هر همه ما که در حدی که فرصت داشتیم البته با همه اونایی که متقاضی بودن ملاقات کردیم ولی در 15 تا باگیمون به هر حال وقت نبود فرصت نشد واقعاً این شور و شوق به خاطر چی بود حسن روحانی که کسی نیست که به قول شما حالا صف ببندن یا بخان ملاقات کنن نماینده ملتی ایران مهم بود فردی که منتخب ملت ایرانه برای اونها مهم بود این انتخابات تکون داد دنیا حالا این انتخابات آید دکتر باعث شد که شما یک جامعه ب... کمی خسته و شاید تا اندازی رو تحویل بگیرید بلافاصله مردم خودشون رو بلازه روحی ترمیم کردن پرست از نشاط و امید شدن و به شما هم گفتن که حالا روی ما هم حساب کنید واقعا این مردم مردم بزرگی هستن و همه افتخاراتو اونها آفریدن چطوری می‌خواید این انسجام ملی رو حفظ کنید این روحیه رو نگه من یک کلمه راجع به اون هستی بگم و بعد میام رو این سوال که بسیار سوال مهمی هست در به من میخوام به مردم اطمینان بدم اصولی که مد نظر مردم هست حقوقی که از آن مردم هست چارچوبی که مقام و معظم رهبری ترسیم کردند این اصول تا پایان مورد مراعات خواهد بود یعنی تو کشور حق هستهی ما با قدرت بیشتر، با شفافیت بیشتر عملیاتی میشه، اجرایی میشه حتی بخش غنیسازی که یه بخشی از حقوق هستی ماست ادامه پیدا میکنه، همین امروزم هم ادامه داره، فردا هم ادامه خواهد داشت و هیچ وقت غنیسازی ما متوقف نخواهد شد، این خط قرمز ماست غنیسازی در ایران متوقف نخواهد شد، این با اوان خط قرمز سازی حق روشن ماست حالا بعضی ها بیاد بعضی ها بدشون بیاد امپیتی را یه جوری بخوان تفسیر بکنن حالا حقوق هم نیستن متاسفانه تعبیراتی میکنن که از یک سرهنگ برمیاد نه از یه حقوق دان برحال روشنه که طبق امپیتی حق ماست طبق این که هر کشوری برای توسع خودش، برای فعالیت خودش حق آزادی عمل داره غنیسازی هم یکی از اوناست هر چیزی که در مقرارت بین المللی ممنونه نشده آزاده و فعالیت هستی سلحامیست که من جمله غنیسازی خب ما الان میخویم یه نیروگاه اطومی داشته باشیم چجوری سختشی تأمین کنیم؟ مگه سخت نیروگاه بدون غنیسازی میشه تأمین کرد اونا میگن انرژی صلحامیز خب انرژی صلحامیز مگه همین برقه اتمی انرژی صلحامیز نیست خب چیکارش بکنیم چجوری این برقه ایجاد بکنیم سوخت اتمی میخواد این سوخت پس غنی سازی می‌خواد و اقدامات دیگری که بعد از غنی سازی باید انجام بده بعد تبدیل به قرص سوخت کنیم باید میله های زیرکونیوم درست کنیم و همه اینایی که به هر حال تبدیل میشه به یه سوخت در مجموع پس اون چهار اصلی ما روش استادی مردم ما کاملا مطمئن باشند در این حال باید ظلمی که بر مردم شده این ظلم باید برداشته بشه ما هدف ما اینه تهدیدها رو دفع کنیم تهدیدها رو رفع بکنیم ما هدف ما اینه تحریمها رو بشکنیم و تحریم رو از سر مردم برداریم ما هدف ما اینه که فرصت لازم رو در صحنه بین المللی ایجاد کنیم همونی که ما تعبیر کردیم از اول به تعامل سازنده با جهان. ما با دنیا یک تعامل سازنده خواهیم داشت انشالله قدم به قدم ما پیش میریم تا جایی که ما به توافق کامل برسیم با پنج به اضافه البته راه طولانی است، اما در این حال این راه رو ما تی خواهیم کرده انشالله و می‌رسیم. شما در پایان گفتید چجوری انسجام ببینید ما اولین مسئله اینه که همه به حقوق یکدیگر احترام بگذاریم من اون منشور حقوق شهروندی که به ملت عزیزمون قول داده بودم امشب پیشنویسش رو سایت قرار گرفت برای اینکه فرهیختگان خبرگان نظر بدن مردم بخونن نظر بدن البته این پیشنویس اولیه است. بخش حقوقی متحقیه کرده میخواستن بدن که من تحصیح نهایی بکنم گفتم اول در اختیار ملت بگذارید بگذارید مردم نظراتشون بدن من هم بعد نگاه میکنم بله بله این در اختیار مردم هست که مردم نگاه کنن مطالعه کنن مخصوصا حقوقدانان فریختگان اساتی دانشگاه است. صاحبان اندیشه با نظراتمون ها انشاءالله ما این رو کامل میکنیم اولین قدم اینه که به حقوق هم دیگر ما همه احترام بکنیم دوم اینکه تو جامعه ما همه احساس آرامش بکنن من یکی از نکات مثبتی که از آغاز این دولت تا حالا حس من اینه انشالله حس همه مردم اینه یه آرامشی به وجود آمده نه فقط تو سکه و دولار و اینا نه تو مسکن و اینا اصلاً تو جامعه ما یه احساس آرامشی می‌کنن تو حال همه ما تو مادم. دانشگاه هم یه احساس آرامش تو بازار هم احساس آرامش تو مدارس هم احساس آرامش چرا تو ورزش هم احساس آرامش نه اونجا که اتفاقا هیجان فراونه و کلی حی... احساس حی... آرامش بالا هیجان رو... تو ورزش هم ما وقتی سیاست رو از رو... ما که کاری نکردیم برای ورزش کردن این والیبال این نمیدونم فوتبال ساحلی نمیدونم فوتبالی همه جا تو ورزش شما ببینش شور شو این جوان‌های ما واقعاً چه می‌کنن اونا پیروزی میآورن حالا عدی هم میگن روحانی متشکرم ولی, <تصفيق> ولی دکتر حالا ما هم نگاه می‌کنیم که به هر حال ما همه باید از ملت عزیزمون متشکر باشیم خب اینا افتخار آفریدن چرا ما که کار زیادی نکردیم تو این صد روز مقصدم وزیر ورزش هم که آخری بود که به هر حال ما تورستیم به هر حال از این کوچه پر و خم پارلمان عبورش بدیم به هر حال ولی بیزیگی شخصیتای رستور تو شما قطعاً وجود داره نمیخوام الان دا خیلی واردشیم چون خیلی فرصت نداریم ولی قطعاً توی اون بحث در واقع گفتگو با سایر کشورهای جهان توی نحوه تعاملتون با همکاران خودتون، تو شکل حرف زدنتون با مردم قبول ندارین؟ ما یک عضو کوچکی از این ملت بزرگ, بزرگ هستیم واقعاً این چنین غیر از این نیست این ملت بزرگ هستن و خدمت به این مردم واقعاً افتخار بر ما حالا من میگم برای ورزش کاری که ما نکردیم این همه پیروزی برای چیه؟ برای که یه خورده این سایه سیاست از اون ورزش ما برداشتیم ما تو فرهنگ کار زیاد نکردیم چرا همه خوشحالن اصحاب فرهنگ؟ برای اینکه فضای امنیتی رو یه خورده بردیم کنار حتی یه خورده دیگه یه خرده بردیم بقیهشم انشالله میبریم انشالله ما همه باید دست به دست هم بدیم ببینید مردم عزیز ما باید بدونن دولت همه امکانات در اختیارش نیست دولت هر کاری نمیتونه انجام بده دولت چارچوب وظایفش در قانون اساسی است اما رئیس جمهور مسئول اجرای تک تک اصول قانون اساسی است تمام وعده‌هایی که من به مردم دادم پای وعده خودم ایستادم من در مسائل سیاست داخلی انسجام وحدت میدونم راه طولانی پشت روی ماست من اصلاً از نزاع خوشم نمیاد به نفع ملت نیست نزاع بعضی ها میخوام پیروزشن پیروز شدن با دوا برو برو نیست آدم هنر خودشو نشون بده هر جنای هنر خودشو نشون بده خدمت بیشتر نشون بده محبوبیت بیشتر پیدا کنه بعضی هنرشون همونه دیگه چیزی غیره اون ندارن دکتر تا همونه. خب این بی هنریست واقعا اگه این ما اسمشو بذاریم هنر واقعاً. هنر بی هنر. هنر نیست ما واقعاً نیاز به انسجام داریم. ما... براش ساز کار دولتی داریم در واقع فکر میکنی؟ اینقدر تحکید دارید میکنی؟ چون اونو که بخشنامه و توصیه ای کفایت نمیکنه؟ یه رفتار دولتی در واقع نه، داره؟ نه ما اولا با قوای دیگر باید دست به دست هم دادیم الان که روابطتون خیلی خوبه حتما باید خوب باشه ما سالهای حتماً. عجیب و غریب هممون همه همون دکتر نه ما که روابطمون بسیار خوبه هم مجلس شورای اسلامی لطف دارن محبت دارن هم قفه قضایی این طور هست قضات محترم رئیس محترم قفه قضایی اصلا یکی از افتخارات ما اینه که در این دولت یه آرامشی بین روابط قوا ایجاد شد قبلش رفتند تا مرز شکایت از همدیگر در دادگاه تا اینجا هم پیش رفت و مردم ما واقعاً از اختلاف رنج میبرن از اختلاف سودی نمیبرند البته این انسجام و وحدت یک عاملش اینه که رهبری مختدر در این کشور ما داریم و همه قوا به رهبری احترام میگذارند رهبری در واقع هماهنگ کننده قوا است اما الحمدلله امروز بین قوا یک تعامل بسی... این تعامل سازنده که ما میگیم که فقط با دنیا نیست اول با خودمونه اول باید تأمل سازنده با خودمون داشته باشیم. یه بخش شماهایی نیست که یه ذره شما هی عقب نشینی میکنیم به نظر هر کد در داخل و خارج دارم میگم. اینجوری آرامش برقرار میکنیم اصلا نسبت من میگم ما نشینی ما نمیکنیم ولی از بعضی چیزا می‌گزاریم، یه ذره به تأخیر زمانی بهش میدیم ولی فضا تر باشه اصلاً نمیگیرید. این استراتژیتون نیست برد. یا تاکتیکتون. که اعتماد ما به هر حال ببینید امید و آرامش و کرامت این سه را باید ما منده نظر کرد اولا امید الحمدلله تو جامعه ما این امید هست در حد بسیار عالی آرامش هم الحمدلله هست و انشالله ایدان دولت هر کاری بتونه راجه با امید مردم و آرامش انجا. این را سرمایه هست کرامت کرامت هم که منصوره و کرامت رو رو همه اون حقوق شهروندی یک بخشی است برای ایجاد اون کرامت ما همه به هم احترام بکنیم دولت از نقد واقعا بدش نمیاد واقعا بدش نمیاد ما انتقا الان صدا و سیما خب ما اصلا به مردم میگم البته ما از رسانه ملی همیشه متشکر بودیم الان متشکر هستیم رسانه ملی رفتارش با دولت نسبت به دولت‌های قبلی تو سال اول تو ماه‌های یه جوره نه رفتار رسانه ملی با ما مثل رفتار ماه‌های آخر دولت‌های پیشه یعنی چه جوری یعنی خیلی راحت انتقاد می‌کنه خیلی راحت بکنه ولی ناپسنده براش نه نه نه آه. اصلا حق رسانه ملی است حق سایر رسانه‌هاست نقد اتفاقاً به نفع ما هست مگر ما معصومیم مگر ما خطا نمی‌کنیم ما خطا می‌کنیم ما اشتباه می‌کنیم نقد اگر سازنده باشه به نفع همه است همه ما نفع می‌بریم و منفعت می‌بریم رسانه ملی هم نقد بکنه ما استقبال می‌کنیم واقعاً خب وقتی فضای مقد آستانه تحمل اون تعبیری که شما می‌کنید من اینجور می‌خوام تعبیر کنم همه باید آستانه تحملمون رو ببریم بالا تحمل کنیم هم دیگر رو و بدونیم با تحمل بیشتر نفع بیشتر آید این مردم بشه خب ما الان تا اینجا که پیش رفتیم چه پیش رفتیم ما تو هستی چجوری جوری پیش رفتیم که شما اشاره کردید اگه مجلس کمک نمی‌کرد اگه سایر ارگان‌ها کمک نمی‌کردند اگر مقام معظم رهبری کمک نمی‌کرد اگر هدایت ایشون ما می‌رسیدیم نمی‌رسیدیم دست به دست هم دادیم همه و بعد همه قواه احترام کردیم به رهبری چارچوب هدایتیشونه قبول کردیم و پذیرفتیم امروز به همدلله یک قدم خوب پیش رفتیم من خوشحالم که همه دوستان ما در دنیا از این توافق جنف خوشحالم به نظر من همه ملت خوشحالن. هم خوشحالم حالا یه رژیم ولش کن اون یه رژیم رژیمی است که نامشرو بوده اشغالگر اصلا بنیانش بر ظلم و جور و دعوا و ایناست کی هست در دنیا یه عده جنگ طلب هستن محدود حالا ممکنه این که دو تا کشورم روی اقرازی ناراحت باشن ولی دنیا واقعا خوشحال ملت‌ها واقعا خوشحالن یه آرامشی درست شد اصلا تو سیاست خارجی ما اولین قدمی که تو این منطقه برداشتیم تلاش کردیم تو سوریه جنگ نشه یه اولین قدم ما بود نمیخوام بگم فقط قدم ما خب از اون تلفونی که بین من و آقای پوتین شروع شد و همکاری هایی که آغاز شد خیلی ها کمک کردن برم برگشت ما هم به سهم خودمون خود دولت سوریه بیشترین کمک رو کرد الحمدلله خب سایه جنگی که می‌تونست بسیار خطرناک باشه برای منطقه، ازش عبور کردیم و اصولاً تو این بحث توافق اخیر ما می‌بینیم کل منطقه یه مقدار احساس آرامش می‌کنه احساس امید می‌کنه حتی کشورهای عربی که گهگاهی کشورهای عربی هم حالا باید همه خوشحال باشن، من فکر نمی‌کنم توافق جنر... خبر درست بهشون نرسیده. به نظرم گفتگوهای شما خیلی معطوفه به اون نقطه نیست. هنوز. چرا؟ ما برای دوستانمون، برای همسایگانمون هم پیغام داریم اه. برای... چون خبر به اونا میرسید که... من فکر میکنم به ضرر هیچیک از همسایگان ما نیست. بعضیا فکر میکنن جمهوری اسلامی ایران دنبال ساخت بمبه. بمب هسته ایست. ایران هیچ وقت دنبال ساخت سلاح کشتار جمعی نبوده و از جمله سلاح هستی و امروز هم نیست و فردا هم نخواهد بود. اون چه هدف ما هست توسعه است اون چه هدف ما هست پیشرفته و انشالله اون رو ما دنبال خواهیم کرد تا به نتیجه برسیم انشالله شاءالله. من قبل از اینکه وارد طرحنگ بشم حالو که منظور هست آخر قصه و اینا بذارید من قبل از اون آقای دکتر اجازه بدن بحخیشایبه‌ها بر سر این هست که در جزئیات سند امضا شده ما و شش کشور چیزهایی هست که اینجا تو سند نیومده. آیا این درسته؟ مثلا یک گزارشی در واقع امریکا منتشر می‌کنه اون رقم 400 میلیون اینا رو توانا شایندیم. برای دانشجوی ای ایرانی خارج کشور و این معنی خاصی داره مانی گفت گفت این داستان بیانیه منتشر کردن با سند خیلی متفاوت نه ببینید سند توافق ما همینه زمیمه ممکنه باشه زمیمه اجرایی است نه چیزی چیز پنهانی در واقع آشبه. وجود نداره که هیچ چیز پنهانی وجود نداره ممکنه زمیمه برای اجرای این مراحل باشه چون ما الان به توافق این هست که چند بانک در دنیا بتونن فعالیت‌های بانکی ما رو ساپورت بکنن و دنبال بکنن اینکه در این بانک‌ها چگونه ما تعامل بکنیم بعضی از موارد یا یک کمیته مشترکی هست که باید این توافق رو به هر حال دنبال بکنه برای اجرایی شدنش نظارت بکنه ممکنه ما یک سند زمینه‌ای یا الحاقیه‌ای برای اجرا داشته باشیم اما سند همینه همین چیزیه که منتشر شده یعنی همه اون اصول اصلی اصلا در این توافق مهم نیست که در این شش ماه چی انجام میگیره مهم اینه که سر اصول ما توافق کردیم با هم یعنی ای؟ ایران حقوق هسته ایش طبق امپی محفوظه ایران می‌تونه فعالیت غنی سازی داشته باشه این که در مراحل آخر تمام تحریم ها برداشته خواهد شد اینکه کشورهای کشفرهای دیگر در مراحل نهایی با ایران همکاری هستهی ای خواهند داشت آخرین بندش هم اینه که بعد از توافق نهایی ایران همانند همه است که امپیتی را امضا کردن و از حقوق خودشون استفاده می بنابراین اون انجام گرفته قدمی بسیار مهم و مثبتی بوده البته راه طولانی در پیش داریم انشالله این راه رو با کمک مردم با هدایت مقام معظم رهبری انجام میدیم و انشالله به نتیجه می‌رسیم. آقای بله خواهش می‌کنم شما بعد از توافق ژنو و توی اون نشست خبری از فعالان اقتصادی دعوت کردین که وارد عرصه بشن و گفتین که نوبت اقتصادی هاست که دیگه فعالیت کنن این توافق چه تأثیری داره روی فعالیت اقتصادی فعالان داخلی کشن؟ مقام عظم رحبری امسال رو سال هماسه سیاسی و هماسه اقتصادی لقب دادن تا حالا همه تو فضا امدتن البته تو فضای هماسه سیاسی بودیم حالا سیاست داخلی سیاست خارجی همه هماسه سیاسی بود تا اینجا بره. الحمدلله تو اقتصادی هم حرکت‌هایی شروع شده، بردم شروع کردن، دولت شروع کرده، اما حماسه از امروز به بعد باید شروع بشه. چرا؟ برای اینکه فضا مناسب‌تر شده. امروز فضا فضای بهتری هست. دیروز اگر فضا این بود که فردا یه تحریم جدید میشه، پس فردا دیگه تحریم وجود نداره. طبق این توافق دیگه تحریم جدید نخواهد بود. اگر قبلاً فضا این بود که نمیدونم ما مثلا تو سرمایه گذاری تو اشتغال معلوم نیست فردا چی میشه آینده روشندتر شد فضای آینده کاملا روشندتر شد ما امروز شما می‌بینید، از این شما خواهید دید که توافقات با کشورهای خارجی سرمایه گذاری شما تردید نکنید سرمایه گذاری بیشتر میشه در ایران فعالیت‌های اقتصادی بیشتر میشه این که شما می‌بینید تو همین چند روزی در بازار بورس اینکه که صف می بندن حجوم میارن مخصوصا در اون جاهایی که تحریم برداشته شده مثل پتروشیمی، مثل ماشین و امثال اینها سنت و اوتوموبیل شما می بینید که مردم دارن به سمت بازار سرمایه میان این حجوم به سمت بازار سرمایه یک فرصتی برای ما ایجاد میکنه یک فضایی برای ما ایجاد میکنه در بخش اقتصادی و همه تلاش ما اینه که انشالله ما فضای کسب و کار رو بیش از پیش بهبود ما ببخشیم و انشالله بخش خصوصی ما، بخش دولتی ما همه ما فعال شیم دست به دست هم بدیم و انشالله شاهد یک تحول بسیار خوب در کشور باشیم من بسیار با آینده این کشور امیدوارم من از مردم عزیز حالا اگر فکر میکنید وقت رو به اتمامه ما شما بفرمید ولی یه چند تا نکته کلیدی و فرهنگ رو دیگه چند تا نکته هم شما بفرمایید بعد بحث رو ما جنبندی بکنیم البته این گزارش به معنای همونطوری که اشاره کردم تنها گزارش دولت نخواهد بود به مردم هم گزارش کطفی می‌خایم دولت هم, هم بخشای مختلف وزرای مختلف انشالله میان و گزارش کار رو به مردم خواهم. تو اون شاءا شما دیگه به نظر من خیلی جدی نزدیک میشیم هم سانتریفیوژیامون می‌چرخن هم کارخونه همون دیگه حالا. یعنی یکی موغیری و یکی دیگه قرار نمی‌گیره. سوالی که سرکار خام کردن که حالا وقت اقتصادداناست، وقت اهل اقتصاده. ما قول تکیرم... ما به مردم این بود که در کنار اینکه سانتریفیوژ می‌چرخه زندگی مردم هم به راحتی به اقتصاد هم به چرخ امروز به این نکته رسیدیم یعنی هم سانتریفیوژهای مادری می‌چرخه و همه ان شاء الله از این به بعد زندگی مردم بهتر خواهد چرخید وضع کشاورزان وضع کارگران بهتر خواهد بود به هر حال تو همه زمینه‌ها ان شاء ما شاهد رونق خواهیم آقای رئیس جمهور فرهنگ همه, گفت... همه گفتیم و همه باش همین کار کردیم مظلوم فرهنگی افتاد مزلوم... آخر آ... مظلوم ناشی از اون که خود ما باش میکنیم دولت های گذشتم همین جمله رو شنیدن و خودشون هم تکرار کردن و همین کارم باش کردم آ... به خصوص اون بخشی آقای رئیس جمهور که حووزه تصدی دولتی در مجموعه فرهنگ هست مد نظر منه میخوام ببینم نسبت دولت شما با فرهنگ چطور تعریف میشه چون بالاخره فرهنگ دولتی برای بعضیا امر ممدوحیست و دولت میکنم فرهنگی شما رو میخویم البته ما 3 دوست فرهنگ دولتی نمیخویم ولی دولت فرهنگی رو انشالله شاءالله میخویم این رو یه قدری توزی نمیفهمید که شما میخواهید فاصله بگیرید از در واقع حضور دولت توی الان تقریبا همه جا حضور داره دولت یعنی دیگه بخش خصوصی فرهنگ جای چندانی برای تنفس نداره، نمیخوام چندان اقرام بکنیم سیاست این دولت این هست که مداخلاتش رو در امر فرهنگ به حد اقل ممکن برسومه حالا البته یک بخشی از فرهنگ شما میدونید آموزش و پرورش، دانشگاه ها، ورزش ارشاد و خیلی از بخشهای مختلفی که فرهنگ. بله من فرهنگ به معنی عام میکلمه دولت حضور داره دولت وظایف طبق قانون اساسی, اساسی بوده ببنه. داره اما در جایی که دخالت دولت ضرورت نداشته باشه حتما خودش کنار میکشه دولت تصدیگری دولت در امر فرهنگ باید به حد اقل ممکن برسه صاحبان فرهنگ باید بیان اونا باید بیان فرهنگ رو بوحده بگیرن تو بخش‌های مختلف باید فرهنگ بیاد حضور پیدا کنه و صاحبان فرهنگ بیان در کنار این فرهنگ انجمن‌های علمی پیشکسفتا در بخش فرهنگ بیان خب ما می‌بینیم کارای صنفی قانون باید جهدگیری فرهنگی رو مشخص بکنه شورای حالی انقلاب فرهنگی در بعض برخی از موارد جهدگیری فرهنگی رو مشخص میکنه البته اما یه نکته من میخوام بگم ما صاحبان فرهنگ رو بهشون اعتماد کنیم صاحبان فرهنگ تو این کشور فرهیختگان ما هستن بزرگان ما هستن خیلی به اونها بیعتمادی بعضی ها تو بعضی از مقاطه نشون دادن نویسندگان ما بهشون اعتماد کنیم فیلم سازان ما بهشون اعتماد بکنیم ما تو همین صد روزه دیدیم خیلی از کتاب که ممنوع شده بود میشد آزاد شد و آزادش کردیم خیلی از نویسنده ها ممنوع الغلم شده بودند. ما اینا رو تبدیل کردیم به صریع القلم به جای ممنوع القلم بیرن قلم بزنن و هرچی میخوام بنویسن در چارچوب قانون البته خود اونا اهل این کشورن وطن دوستن برحال علاقمند به این کشور هستن خیلی از کتاب خیلی از فیلم ها مقررات دست ما این مقررات هم در بخش اقتصاد داریم کم میکنیم روانسازی میکنیم هم در بخش فرهنگ داریم روانسازی میکنیم فضا‌ی عملیاتی رو از فرهنگ باید کنار بزنیم همونطوری که من گفتم قدم به قدم فرهنگ رو باید کالاهای فرهنگ رو باید فرهنگی رو باید بیشتر اقتصادی بکنیم اینا رو به عنوان وظیفه‌ی دولت دارین می‌فهمید؟ بح... دولت ایم... نظرش نه دولت نظرش نه هیچ دولت نظرش نه هیچ فیلتری بهتر از افکار عمومی مردم نیست. بعد انتظار... او فیلم خوب رو هنر خوب رو گروه های از جامعه انتظار ویژه از شما دارن به خصوص اونا رو چجور شما میگن؟ آقا آقای دولت این چه فیلمیه؟ این چه کتابیه؟ با اونا چه کار وقتی یه فیلم ساختن مردم نرفتن ببینن بی اعتنا بیعتناشدن اون فیلمساز خودش میدونه باید چی کار بکنه به ارحال ببینید من نمیخوام بگم تو امور فرهنگی ما قانون نداشته باشیم قانون شفاف باید داشته باشیم بحث قانون نیست قانون شفاف باید وجود داشته باشه اما مداخلات دولت باید به حد اقل برسیم و ما باید بتونیم در امر فرهنگ اعتماد کنیم به انجامنهای فرهنگی سنفی سنفی و اونا خودشون صلاحیتشون از خیلی از کارمندای دولتی که میخوان مداخله کنن بیشتره جور نیست که صلاحیت اون کارمند از اون نویسنده بولاتر باشه از, از اون فیلمساز بولاتر باشه البته باید با هم تعامل بکنیم باید در کنار هم قرار بواد فضای مناسب براشو ایجاد بکنیم من یه نکته میخوام بگم و اون اینکه این دولت دنبال آشتیه خلاصه میخواد با همه آشتی کنه دولت در گذشته با کارشناسا فاصله گرفته بود شما دیدید سازمان مدیریت برنامه بود چه تهتیل شد، درش قفل شد، ما میخواییم باز کنیم، کارشناسه باید بیان با اصحاب فرهنگ ما میخواییم آشتی کنیم، و این دولت آشتی کرده، شما امروز میبینید فضای فرهنگی کاملاً با دیروز متفاوته این دولت میخواید با همه دانشجو آشتی بکنه، اینا عزیزان ما هستند. ولی این با... رکود تورمی توی اقتصاد فرهنگ هم هست، شما هم که پول ندارین اونجا هم که افزاردگی سالیان تا ما... رو رو رو پیدا بکنه با, با میتونیم کشه این هر چه این تعارضات رو چجوری حل میکنیم؟ ما یک فضای رقابتی خوب در فرهنگ ایجاد کنیم مردم ما خواهان کالای خوب فرهنگی هستن مگه میشه مردم کالای فرهنگی نخوان؟ فرهنگ کالای مصرفش فرهنگی غذای روح مردمه آره ولی مصرفش پایین رئیس شما توی همین الان روزنامه‌های ما جمع من هم چند دقیقه پیش قبل از گفتگو با شما در واقع که دوستان جمع تیراژ روزنامه‌های رسمی آشنا و مشهور کشور 26 تا روزنامه به 1 میلیون نسخه هم نمی‌رسه البته نه اینکه ما کمک نکنیم به بخش فرهنگی مداخلمون هم می‌خوایم کم کنیم کمکمون می‌خوایم کمکمون رو ادامه بدیم عادلانه ادامه بدیم به لحاظ اقتصادی به لحاظ اقتصادی حمایت‌های سیاسی می‌خوایم عادلانه رفتار بکنیم خب یه چیزایی بود شما هم شنیدید به هر حال ما نمیخاییم تحتی عناوین خاص یه افراد خاصی به هر حال بخوان سوء استفاده بکنن شما تو همین یارانه مطبوعاتی اخیر دیدید خیلی فضا عادلانه تر شده و ما میخویم توی چارچوب عادلانه واقعا دولت کمک کنه صندوق رو شما دیدید این صندوق رو ما فعال کردیم در بخش کمک به بخش هنری برحال نه این دولت کمک نکنه بخواهد حمایت نکنه دولت حمایت خواهد کرد کمک خواهد کرد دولت اول آشتی کرده با همه اهل فرهنگ و این آشتی خودش ادامه میده رابطه خودش تعمیق میبخشه حمایت میکنه کمک میکنه مثل خانه سینما یک دو جایی دیگه هم شرط مشابه داره خانه سینما که باز شد خیلی سریعه برای اونم هر خانه‌ای که باید باز شما که مردمم ما کلید که دارم به هر حال اگه قفل دیگری هم هست این کلیدی ای که مردم به شما دادن یک به یک که پس اراده‌ای برای باز کردن اونها هم وجود داره حتما حتما اینجور هست است این می امنیتی که میل حضرت عالی هم بود خودتون اشاره کردین چطوری سریع‌تر برش داریم ترس کردم یه خورده چون فخ نداریم امنیت... خیلی می‌خوام توضیح بدم فضای امنیتی دارن. خیلی کمتر شده اما ببینید یه سری مسائل هست زمان لازم خودش رو میطلبه. همین بحث انسجام و وحدت و نزدیک شدن به هم دیگه رو جناها به هم نزدیک شن تشکلا به هم نزدیک شن نه اینکه رقابت نباشه، رقابت که باید باشه. نه اینکه اختلاف نظر نباشه، اختلاف نظر. یعنی بقیه جریان‌های اجتماعی فرهنگی خود به خود این رو حل می‌کنن؟ نه، دولت هم که می‌کنه در واقع همه دولت کم... همه کمک کنیم، همه کمک. ما هدف ما این باشه. ببینید هدف این باشه که دلها از کینه ها شسته بشه این کینه چیزی رو حل نمی کنه. رقابت اب رقابت سالم خیلی خوبه رقابت کنیم رقابت سالم داشته باشیم هر کسی بره دنبال اهدافی که مدد نظره اهداف قانونی ما دنبال آزادی سالم و مسئولانه در جامعه هستیم همه چیز سر جای خودش هست اما در این حال اه... کاری بکنیم که اون نزدیکی، اون الفت، الان احساس من اینه که مذاهب مختلف، عدیان مختلف، اقوان، اقوام مختلف تو ایران احساس آزادی بیشتری می احساس چرا، چون بیشتر... مثلا در مدوریت دارن بیشتر می آزادی بیشتری می هم روانی این احساس رو می کنن هم, هم دولت واقعا مسمم هست نسبت به اقوام، نسبت به مذاهب، نسبت به عدیان اونا باید از حقوق اصلا این داستان حقوق شهروندی یک هدف بزرگش همینه همه شهروندان ای، ایرانی هر کی تبعه این کشور تو داخل تو خارجه اونا هم تو خارجن حقوق دارن حقوق شهروندی دارن اونا هم باید بیان برن اونا هم فرزندانشون حقوق دارن حقوق شهروندی دارن این حقوق شهروندی برای اینه که ببینید ایرانی‌ها همه باید احساس بکنن زیر یک چتر واحد هویت ایرانی و فرهنگ بلند ایرانی دارن زندگی می‌کنن. همه افتخار کنن به این فرهنگ ایرانی، به هویت ایرانی افتخار کنن که همه افتخار می‌کنن. و در سایه این افتخار بتونن الفت و برادری و محبت خودشون رو روز روزه که شعار سجانه شما می یا اخلاق بود آیه رئیس رو احیا اخلاق یکی از شعارهایی بوده که خیلی پرمانی بود. بود و ما دنبالش هستیم شما رو به گذشته نشون میداد علام اخلاقی دلال... که حال نیازمند احیاس الحمدلله این احیای اخلاق رو هم ما شاهدیم و میبینیم که این اخلاق داره احیا من در پایان این ارزم به ملت بزرگ ایران اه، اه، میخوام من خسته بگم شدین؟ من خسانه شدم سوال درید بفرمایید نه نه, برم... نه،, نه، قبان نه. نه ما هم دارم. سوال درید بفرمایید ما درکی نه نه اگه نکته باقی مونده میخ... البته اجدای هست ولی چون قول دادین هم کارانتون میگن دیگه میگذاریم ها موافقین بله بله بله معلف البته میشه بخش های دیگری رو گزارش داد من میخوام که بینندگان عزیز ما، ملت عزیز ما که مشاهده میکنن این برنامه رو خسته نشن. حالا البته ما مجریهای خوبی امشب داریم و شما نویذارید حال کسی خسته بشه با اجرای بسیار خوبتون. حال لشکر شما زیاد سه نفری آمدید ولی حال خیلی خوب بود. من متشکرم. من فکر میکنم که خیلی از سوالات تو شما مطرح کردید. یادم آوردید بحث رو. و الانم من حس میکنم که حداقل حد شما خسته نشدید من هم خسته نشدم و ما بدونیم بینندگان ما هم خسته نشدن ادامه میدیم ما سرحالتن از اول بسته انشالله ما باز هم در فرصت های آینده در مقاطع آینده بنده به عنوان خادم مردم باز هم در خدمت مردم خواهم بود و گزارش خواهم داد به مردم از برنامه بعدی و به صد روز هم باز بقیه همکاران من میان به مردم گزارش میدن در بخشهای مختلف ممکنه سوالاتی دیگری هم برای مردم مطرح باشی که اون سوالات رو باید پاسخ بدیم من در این پایان میخوام که از مردم بسیار خوب و عزیز تشکر کنم من میخوام به مردم عزیز بگم که ما این راه رو باهم شروع کردیم باهم آغاز کردیم آمدیم تا 24 خورداد 92 و مردم چه حماسه بزرگی رو آفریدن بعد از اعلان انتخابات مردم تو خیابونها چه کردند، شادی آفریدن امید آفریدن و تا امروز مردم در کنار دولت بودن دولت در کنار مردم بود. من به مردم عزیز عرض میکنم ما با هم خواهیم بود در کنار هم خواهیم بود با کمک مردم این دولت مسیر رو ادامه میده و انشالله تا پایان کار در کنار هم فعال خواهیم بود و دست به دست هم میدیم من سپیده رو می‌بینم. سپیدهی که منجر به صبح روشنایی خواهد شد من توسعه رو برای سالهای آینده این کشور به خوبی می‌بینم. ما کشور بسیار بزرگی هستیم کشور بسیار غنیگی هستیم دومین منابع گاز دنیا اینجاست چهارمین منبع نفت دنیا اینجاست شست تنوع مدنی تو این کشوره ما پونزه همیم در سطح دنیا ما از لحاظ نیروی انسانی بسیار قوی هستیم دانشمندان، اندیشمندان، فرهیختگان شما این هستهی ای رو یه گوشه ایست از کاری که فرهیختگان ما انجام دادن مردم ما حتما اون صاب رو خواهند آفرید و واقعاً الهیص صبحو به غریب. مردم تو سایت ها جاهای مختلف با بیان زیباشون گفتند روحانی متشکریم من امشب میخوام به همه ملت ایران بگم مردم از شما متشکرم انشاءالله که سلامت باشید قربان سفر خیلی متشکرم از یکی که شما مردم ایران که هم از طریق شبکه که تلویزیون و هم از رادیو ایران گفت‌وگوی ما رو در صدای کمین روز دولت آقای روحانی با ایشان ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران داشت مردم ایران خداحافظ. خیلی متشکرم. خداحافظ. خداحافظ. باشه دمت گرم. ان شاء